بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله احلی و صلاة و ها به حمد الله تا هنوز مخارج حروف را از دو منطقهش تمام شد یکی منطقه حلق بود که دارای سه مخرج بود اقصال حلق, حلق و سطح الحلق و عدن الحلق و یکی هم منطقه لسان بود که درش ده مخرج بود و این دو سه، سیزده تا تا هنوز تمام شد. رسیدیم در منطقه سوم سو که شفتان باشه در شفتان دو تا مخرج وجود دارد که همرای اون سیزده تا میشه پونزده تا. حالا یکی یکی اینو بخونیم. و فیه ما، شفتان و فیه فی ما مخرجان، شفتان که درش دو مخرج وجود داره. المخرج اول مابین مابین شفتای و منه تخرج الباء و منه تخرج الباء و المیم معنتباق هما و الباء بدون انطباق از این ما بین و منهو یعنی از این ما بین تخرج الباء حرف با واجه با خارج میشه و واجه میم خارج میشه معنت باقی ما با منتبق شدن این دوتا با و میم اه یعنی معنت باقی ما با منطبق شدن اون دوتا شفت شفتاین با هم در این قسمت اون که قابل توجه هست این است که لبها کاملا با هم منطبق میشند میشستند ولی واو بدون انتباق ولی واو منطبق نمیشه بلکه واو خالی میمانه من تا حالت غنشگی به خود میگیره اب ببین لب کاملا میچسبه هم کاملا لب ها میچسبه او او لب ها به هم نمیچسبه و منطبه نمیشوند این مخرج اول مخرج دوم اششفت و سفلا نالت شاقه ها به رؤوس و من تخرج تخر و مخرج دوم اششفتان شفه سفلاست اون لب پایین است که این لب پایین معلت ساقی ها با چسبیدنش با سر دندان های بالا بالاست وقت لب پایین با سر دندان سنایه بالا چسبید و منها تخرج الفا از این چسبیدن و از این التساق افتساق شفعی صفلا بارو سنوی بالا حرف فا خارج میشه پس حالا ما سه تا منطقه داشتیم که از منطقه اول ما حلق خاندیم منطقه دومی که خاندیم لسان بود و منطقه سوم من که حالا تمام شد شفتان هست سه تا مخرج در حلق ده تا مخرج در لسون و دو تا مخرج هم در شفتون، یکی مابین شفتین هست که با میم باشه با منطبق شدن اون دو تا شرف یا دو تا لب یکی واو باشه بدون این طباق دیگه شرف پایین یا لب پایین با سر دندان های بالا میچسبه که با این چسبش حرف فا تولید نشن پس این سی منطقه شد تمام میرسیم اینجا مجویدون دو تا مخرج دیگر رو هم یا دو تا موضع دیگر رو هم برای در باب مخارج حروف ذکر کردن یکی جوف هست و یکی هم خیشوم هست با توجه به این جوف و خیشوم پس در کل میشه 17 تا مخرج سه تا حلق بود ده تا لسان سیزده، داشفتان پانزده، جوفم شانزده، خیشمم هبده حالا در این خیشوم و در این جوف چی حروفی باوجود می آین؟ اول جوف شروع کنیم، جوف ازش خارج میشه سه دانه حرف، واو الیف و یا آره واو الیف و یا همه حروف مدی این حروف مدی که هست از جوف دهن برون میشه یعنی از خالگاه دهن ادا میشه بدون این که چیزی به چیزی بچسبه فقط مخرجشان جوف و خالگاه حلق و دهن هست همین ا او ای یا این همینطوری در خیشوم دو تا حرف وجود داره که اونم اون دو تا حرف صدای غنه هست غنه نون و غنه میم پس قنه های نون و میم از خیشوم ادا میشه و حروف مردی از جوف ده ندا با توجه به این کل مناطق و موضع مخارج حروف میشه پنج تا خب از اول اگر شروع کنیم همینطور حلق یک لسان دو شفتان سه جوف چهار و خیشم هم پنج این اونچه بود از مخارج حروف انشاءالله بعدا راجع به صفات حروف هم خواهیم خواند. و الله علی سیدنا محمد و آله